خب بسم الله الرحمن الرحیم و والحیعتو ما اسم مره داریم اسم حیعت داریم اینا چه هستند هم اسم مره مصدره هم اسم حیعت مصدر هستند ولی ببینیم که پس چرا بسی جدادانه آورده اکل تولیام اکلتن ببینید اینجا اکلتن مصدر هم ولی دلانت بچی میکنه به تعداد میکنه خوردم یک مرتبه مره رو بیان میکنه شی رو بیان میکنه یا مثلا دققت ساعت دققتا فتحت الباب فتحتا امشنی گروه دو اغفل مریب اغفاعتا اغفاعتا دیمانیش بلا دید نا بهوشی انطلق الطاعر انطلاقتا کبر المصلي تکدیرتا یعنی اون ثلاثی مجرد بود این ثلاثی این بیش از سه حرفی هست تو ترکیبش نصب مثلا منظور سوال شما این است که آیا اینا مره است یا هیات بله بله دو تا اولی مره هستند سومی هیات است در ببین در حالت حالتو داره بیان میکنه در عدد رو بیان میکنه مثلا موقعی که من میگم اکل تولیوم اکلتن خورده امروز یک بار خورده ولی حالا مساله بعدی رو نگاه کنید لا تجلس جلس تل متکبر نشین مانند نشفتن متکبر اون حیعتو داره بیان میکنه خودش میگه در قواعد شما دیگه روی قواعد این خیلی در ساده یه لا تمشی مشیت المختال لا تجلس جلست المتکبر لا تنظر نظرت الحائق فرقشون اینه که مره بر وزن فعلت هست ولی این بر وزن فعله در سلاسی ها در بیش سلاسی ها اسم مره همون مصدر, مصدر هست واسم هائة غير سلسل نادر خودش ميجي اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة اسم مرة مصدرية دلالات بر وقوع كار ميكونة يك مرتبة واسم هائة مصدر يدل على هائة الفيل حين وقوعه اسم هائة مصدرية دلالة بر هائة فيل ميكونة زمانك عنجام جرفت نرو راغنه كف اه شي مثلا كف دو وبرين اينك مثال جيد اسم المره يكون على وزن فعله اسم مبالغه على وزن فعال اه اسم مبالغه على وزن فعال بروز فعلتول هست اذا كان الفعل ثلاثيا زمانك فعل ثلاثي باشه فإن كان غير ثلاثي كان على وزن المصدر ولزمانك غير ثلاثي باشه منظورش بيشتر الصرف داشته باشه هلا حرفا چه اصلی باشن چه اضافی فرق نمیکنه. بیشتر از چه حرف که داشت اون موقع اسم مرج است هست فه غیر اثولاتیین اگر غیر اثولاتی بود اسم مره کانه على وزن المصدر بر وزن مفدر هست بزیاد تتاین فی با اضافه کردن یک تا در آخرش مثلا در اکرام که غیر سه حرفی هست اکرامه اکرام تو زیدن اکرامتن همون مهدر رو در آخر شیفه میاوریم مره این اسم مره هست مثلا کرمتو کرمتو ال... زیده کرمتو زیدن کرمتو رجل تکریمتن مهدر خود همون فعله رو بیارید باتا مهدر همون خوده فعله رو. پس این خیلی ساده است اسم مره بر وزن فعاله هست اگر سلاسی باشه، اگر بیش سه حرف داشته باشه، چه حرف فعصی باشه، چه زاید پرک کنه، اون موقع با اضافه کردن یک تای در آخرش درست میشه اما اسم حیعتی یکونو على وزن فعله اذا کنه الفعلو سلاسیل اسم حیعت بر وزن فعلتون هست زمانی که فعل سلاسی باشه ولا له من غیر سلاسی و غیر سلاسی سیقهی نداره سد و نوزده اذا کان المصدر رو به تایی که الاصل زمانی که مفدر خاتمه یافته بود با تا در اک کانت دلالتو علال مرتی بلوص خلاب سیغه خب اگر یه مصدری خودش تا داشت مثلا گوش کنید گفته بود ما اتایی در آخر میاریم خلاص مره میشه ولی بحث این است که اگر خودش در اصل تا داشت یک تایی دیگه بیاری؟ نه یک قاعده دیگه میگه اینجا دقت کنید اذا کان المدر مختوباً به تایی فی الاصلی زمانی که مدر خاتمه یافته بود با تا در اصل کانت على علالمرتی بالوصفی لا بسیغتی اینجا دیگه دلالت بر کعداد بر مره بر با وصف س نه به وسیله خود سیغه مانند چی یعنی اگر اگر مصدر بر وزن چی بود خود مصدر چی داشت از خودش از خودش تایی داشت جان؟ خب یعنی اونجا ما برای اینکه عددو عدد بیان کنیم دیگه سیغه رو نمیاریم بلکه با چه بیانش میکنی؟ با وصف بس. جان خب این چیز دیگه میگه اینجا بیایید اذا کان المصدر مختوماً به طائف الاصل مصدری که در اصل با تا شده بود؟ مثلا اکلتن اکلتن در اصل تا نداره تا داره؟ نه داره؟ ما آوردیم آخرشتی آخرشتا داره بعد بعد جان نه ن که تا هست اذا کار المقدر مختوبا به طائف الاصل خود مدر از خودش تا داشت مانند مزارارتتن که از خودش چی داره تا داره. کارتدللا تو ال المره خب ما ببینید اینجا این نقطه میخوا این نقطه اینه مثلا اگر من بخوام بگم که یک بار زدم یک بار دیگم ذرب تو ضربت هم ذرب تو ضربت هم. اینجا من یک تای در آخر آوردم دلالت بر چی کرد؟ دلالت بر, بر مره کرد دلالت بر کرد؟ حالا اگر یه مصدری خودش از خودش تا داشته باشه اون موقع دیگه ما نمیدونیم که این مره هست از قرن صدرش چی داره؟ ماننده مثلا سابق تو آ؟ اینجا ما می‌بینیم که این مره یا مفعول مطلقه؟ ولی دلالت برمره میکنه اینجا آیا اینجا این کلمه ما از کجا بگیریم که دلالت برمره میکنه خب نگه اینجا چکار میکنیم کانه علی دلالتو علالمرتی بلوصفی میاریم تا به ما بگه که این دلالت بسی میکنه برمره میکنه ماننده مثلا در آخرش کلمه رو میاریم جان، باید چطوری <تصفح> مثلا اقامتون اقامتون اقامتا واحده. فهمیدید؟ میگه اگر کلمهی مست دری خودش تا داشت مسم باب افعال مثل باب چی؟ در در ها در عجواتها تا داره اقام و یقیم و اقامت هم یا باب مفاعله جاهده یا جاهده و مجاهده تا اینایی خودشون تا دارن میگه اگر ما خواستیم که مره رو با اینا بیان کنیم اینایی خودشون تا دارن مجبوریم که بله باوست اینو دلالت رو بیان کنیم إن جملاً وكذلك شأن الدلالة على الهيئة إذا كان الفعل صلاسياً، ميشه أن هيئتها ما در هيئة شيء إضافي مكادين، يبتاع إضافي مكادين، والبروزات فعلتون بود، والبروزات فعلتون بود مرة، إن برودن تبود فعلتون إن السحر في بشتى لا. این نقطه ادامه قائبه رو گوش کن میگه و کذالی تشنف دلالت هم همچنین هست قصه در رابطه با هیئت مثلا اگر هیئت هم آخر مستری هست که برواز فعلتون هست اگر اون مستری خودش از خودش چی داشت تایی داشت ما با چه کلمه هیئت رو بیان کنیم بله باوست یا اضافه مانند جان بله بله اضافه مانند این ببینید لا تنظر نظره الحائری مضاف است جاز ماف است پس قاعده سدمیزهم میگه اگر مصدری خودش در اصل تا داشت برای اینکه دلالت بر مره بکند به وسیله واسه نه وسیله سیغه ما اون کار میکنیم چون سیغه رو که ما میاریم ما نمیبینیم این مره است یا نیست خودش از خودش چی داره خودش. تاده و همچنین هیات و همچنین چی نه. به همین شکل هست جان بله ما در چند درس پیش در ورده مشتق خوندیم از اینجا به بعد دیگه بحث بسیار ساده میشه اقسام مشتق واس میشه موافقه في رس باشد